این صبح، این نسیم، این سفره محیا شده سبز، این من و این تو همه شاهدند که چگونه دست و دل به هم گره خوردند. یکی شدند و یگانه تا از آن سو آمدی و او از سوی ما آمد. آمدی یا آمدی؟ اول فقط یک دل بود، یک هوای نشستن و گفتند. یک بوی دلتنگ و سرشار از خواستن یک هنوز باهم ساده رفتیم و نشستیم خواندیم و گریستیم بعد یک صدا شدیم هم آواز و هم بغز و هم گریه هم نفس برای باز تا همیشه باهم بودن برای یک قدم زدن رفیقانه برای یک سلام نگفته، برای یک خلوت دل خاص، برای یک دل سیر گریه کردن، برای هم سفر همیشه عشق، باران، باری ای اشق، اکنون اینجا هوای همیشه را نمیخواهم، نشانی خانه کجاست؟ سلام من مصطفیم و اینجا رادیو هجده بنفشیه که دلش بنفشه و بچه سال دل آدمیزاد تنها بخش از آدمیزاد بودنه که اول از همه میاد و آخر از همه میره البته نمیشه منکر این موضوع شد که از همه جا زیفتر و زریفتر و نازنازوتره ولی خب در اصل میتونه خیلی خیلی هم سنگ و سخت و محکم باشه فکر کنم دلا یکی از اون ناشناخته ترین موجودات این عالمه موجودات ناشناخته ای که اول از همه آفریده شدند و به گمونم قدیمی ترین رفیقای خدا. حتی شیتونم گاهی دلش قیلی ویلی میره که به یاد قدیما، بیاد با دلا به از اون قسم روز الستش یه چایی بخور و باهاشون از خاطرات قدیما بگه. همون زمانی که هنوز سر و کله آدمیزاد پیدا نشده بود. دلا قبل از آدما آفریده شدن. اصلا شاید آدما رو خدا آفرید که رو یه جایی و برای دلاش یه خونه پیدا کنه. من چه بدونم؟ دلا رازالود ترین موجودات این دنیا موجوداتی که در اصل مهربونن و شاد موجوداتی که شاه شاهانن و مادر تمام احساسات اینجا رادیو هجده بنفشه و شما به اپیزود 11 از فصل دوم گوش میدید. این اپیزود قطعا به پاس سالها دل بودن دلها و رفیقای اونها نوشته تهیه شده اپیزودی که تقدیم میشه به همه ی همه ی که نشکستن و شکستن و نرمن و سنگن و مهربون و غمگین و شادوش شاد. قصد جفاها نکنی ور بکنی با, با دل من و دل من و دل من و دل من و دل من غزل کنی بر تن من شاد شوی دشمن من وانگ حزم خسته شود یا دل تو یا دل من واوله شوی دل من بی سر و بی پا دل من وقت سحر ها دل من رفته به هر جا دل من مرده و زنده دل من گر و خنده دل من خواجه و بنده دل من عطو چو دریان دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن گردد من فوق سرای یار دل من سوخته والله غرتو در طلب گهرتو اومده مو خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه کر خون دل من ساکن و گردون دل من فوق سرای یار دل من سوخته والله غرتو در طلب گهرتو اومده مو خیمه زده بر لب دریا دل من از همون وقتی که آقای خدا بیا مرزش سل گرفت و مرد، برادرش همشون یه سهم از زمینا برداشتن و به علی کوچیکه چیزی ندادن. اونم یه بغچه زد زیر بغلش و تو سرمای کویر سوار مینیبوس شده اومد شهر. اون بعد از ظهر پاییزی سردی که علی رسید شهر، تنها جایی که داشت بره خونه ی عموش بود. حاجعمو در اصل برادر پدرش نبود، اون دوست صمیمی آقاش بود. علی کوچیکه که اون زمان سالش بود رفت سراغ حاجعمو اونجا یک خونه بزرگ بود و درندشت با باخشه که حالا تو اون موقع سال داشتن از برگای زرد پر می شدن حاجمو سه تا پسر داشت با یه دختر همه پسراش درس خونده بودن. یکیشون داشت میرفت آمریکا. اون دوتای دیگه هم دکتر و مهندس بودن. دختر هاجعمو هم زمستون عروسیش بود. علی با خودش فکر کرد که کاش آقای اونم زنده بود. کاش برادراش دوسش داشته. هاجعمو که شنید وضعیت علی رو، اونو گذاشت پادایی دکون یکی از رفیقاش. علی شد پادویه دکون احمد آقا خیاط. کار علی کوچیکه اونجا این بود که اندازه رو بگیره، بره از بازار پارچه بخره، تمیز کنه، به چایی بده و خریدای خونه ی احمد آقا رو انجام بده یه روز وسط اول پاییز وقتی که داشت سفارش های خونه رو میداد برای اولین بار توی اون خونه زیباترین چیزی رو دید که تا الان دیده بود واقعا دل چه موجود عجیبیه؟؟ یار دل یار یار برخیز و بیا بتا برای دل ما حل کن به جمال خویشتن مشکل ما یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم زام پیش که کوزه ها کنند از گل ما یار یاره دیده یاره اون موجود زیبا کسی نبود جز پریدخ دختر احمد آقا وقتی که ظرف غذا رو داد دست علی و با اون پیراهن سبز و جاکت سفید توی اون بارون دوید و رفتو این آغاز یک داستان تکراری احساسی بود همونی که پسر فقیر آشق دختر پول دار میشه دختری که از قضا توی داستان ما دختر استاش هم هست علی به وجدان گرفته بود از یه طرف دوستاش سر هر مسئله کوچیکی بدوه و بره دمه در خونه ی استاش از یه طرف هم فکر میکرد یه آدم بچشمه و به اعتماد اوستاش داره خیانت میکنه ولی چه میشد کرد با صدای محکم دلش که میگفت برو؟ یه چند سالی گذشت. حالا احمد آقا به علی اعتماد کرده بود و راست دوزیا رو میداد بهش. علی تو کل این چند سال هیچ وقت نگفته بود به کسی که چقدر پری رو دوست داره. فقط دلش از این موضوع خبر داشت و خود پری. نه اینکه گمون کنین رفته باشن و با هم حرف زده باشن یا هر چیزی. تمام این احساس توسط نگاه رد و بدل میشد. اگه پری به علی میگفت سلام یا می میکرد که دیگه تمام دنیا رو برای چند روز میدادن به این پسر. تازه یک بارم پری به علی گفته بود دوسر دارم. علی اون روز انگار دیگه روی زمین نبود. ولی یه روز که اوستاش دست کرد توی جیب کتش و یه آلم پول در و داد بهش دنیا روی سر علی خراب شد. اوستا بهش گفت که بره و کلی شیرینی و میوه و اینجور چیزا بخره. چون شب خاستگار میاد برای پری؟ دل علی از وجودش کنده شد. کنده شد و رفت چسبی تهه تهه ته, ته وجودش. زی علی رفت و چند جعب میوه و شیرینی خرید و برد خونه ی اوستاش پری پشت پنجره بود تا علی رو دید چشماشو ازش دزدید. علی باید چیکار میکرد؟ باید میرفت به اوستاش میگفت که عاشق دخترش شده؟ اون وقت حتما اوستاش یه پسگردنی بهش میزد و میداختش وسط تا می می و تا میخورد میزدش و آب روشو میبرد ولی یه یه صدایی از ته ته اعماق وجودش داد زد هی <تصفح> یه دوید. رفت و توی چشای اوستاش زل زد و گفت ماجرا رو یهو دست سردی رو فقط دید که اومد سمت صورتش و بعدش هم تنها چیزی که یادش موند از اون ماجرا بازاریایی بودن که اونو از زیر مشت و احمد آقا بیرون میکشیدن واقعا دل خیلی موجود عجیبیه یادت در فریاد که کنم که در ستاره ندارم، پر از سخنان توییم منه، چگونه نبود توییم منه، چگونه نبود؟ کنار پنجره یک مرد داشت جان میداد، غرور قدرت خود را به من نشان میداد. کسوف بود؟ نه، خورشید دلگرفته ظهر پیام تسلیتش را به آسمان میداد. دلم برای خودم لاقل کمی کمی میسوخت اگر که پوچی دنیایتان امان میداد. زمان همیشه مرا زیر خیش له میکرد. همیشه فرصت من را به دیگران میداد. پسر گرفت، سر تیغ را رگش را زد پدر به کودک قصه هنوز نان میداد و بعد زلزله شد چشم را که وا کردم میان خا کسی هی مرا تکان می داد در چشم من جان زمان چرا به سنگ جفا شکست دلم را تو این آزنی بیا و ببین در این خانه قلم را بیا و ببین در این خانه قلم را چند ماهی گذشت ماهی که برای علی یه دنیا سنگینی داشت علی رفت و توی یه تولیدی تازه تأسیس شلوار مردونه اونور شهر شد راست دوز یه راست دوز ساده بعد از اون اتفاق یه دست کتک حسابیم از هاجموش خورد هاجمو بهش گفت که یه دوز ناموسه علی دوست داشت داد بزنه، فریاد بزنه و از همه بپرسه آخه اشتباه کارش کجا بوده؟ دوستش از هاج امو بپرسه مگه همین پسر بزرگ خودت نبود که آشق دختر شریکت شده بود؟ اگر این کار بده چرا فقط برای علی بده؟ چون علی کسی رو نداره و یتیمه؟ ولی علی هیچی نگفت؟ سرش رو انداخ پایین رفت. ولی بعد از همه این ماجراها و سقوط دلش و اون فریاد بلند بزدل بودن، علی دیگه بزدل نبود. فکر کرد به برادرش که حقشو خوردن به مادرش که طرف برادر بزرگشو گرفته به کسایی که احساس پاکشو با هیزی و دوزی یکی کردن یه روز رفت جلوی دبیرستان دخترونه که پری توش درس میخوند اونقدر واسات تا دخترها تعطیل شدن و پری پریو تعقیب کرد توی یه پیچ که پری از دوستش جدا شد علی رفت و بهش گفت که چقدر دوستش داره ازش پرسید که اونم علی رو دوست داره ولی چشمای پری همون چشمای همیشهها نبودن پر بودن از سر ما و بی و تکبر پری پشت چشمی برای علی نازو کرد و بهش گفت تو فکر کردی کی هستی پسر دهاتی بی خانواده بگم آقای جونم به جایی که عرب نیانداخت من قراره با پسر حاجقا محمودی ازدواج کنم سر ما هم عقدمونه میدونی حاجقا محمودی کیه صاحب نصف حجره بازار اشاره کنه میتونه کل دهات شما رو بخره این کلمات از دهن هر کی در اومده بود برای علی ذره یا هم نداشت ولی پری؟ آخه پری و نگاهاش و رفتاراش که اینطوری نبودن چی شد؟ علی تو دلش گفت یعنی طی چند ماه یه آدم اینقدر عوض میشه مگه پری نگفته بود که دوستم داره؟ این حرفا یه سرپوش بزرگ گذاشت رو دل ترک ترک شده علی بعد چند وقتم که سرپوش و برداشت چیزی جز یه تک سنگ ازش باقی نمونده بود من که میگم قدرت کلمات از قدرت دلا هم بیشتره به تو تبریک میگم. میگم که به تو باختم و دیر پالک کردم دل خود ساختم و به تو تبریک میگم که دلم دیشت تو که تمام زندگی تو یاد دیشت تو تو یاد دیشت تو ما چی خواستم از به بجوز آشق بودن که چشان برای تو آینه یه دک بودن به چی کم داشتن که بریم از زلم به کدوم مقصوده نرسیم دیاز زلا نرسیم از زلا در اصل همه آدما گمون می که صاحب دلاشونن ولی هیچ کس اینو نفهمید در طول تاریخ که این دلان که صاحب های و شرط ما آدم ها. شاید هم مدیر برنامه های ما هستن اسمشو هرچی می میخوایم بذاریم بذاریم در هر صورت اختیار ما تو دست این موجودات نیم وجبیه. اصلا کل روح آدمی زاد توی همین دل و قلب کوچولو. چو میشه البته این دل جورکش آدمی هست شاید اگر دل نبود آدما از زور درد و خوشی میترکیدن ولی دل مثل ترموستات میمونه یهویی همه انرژیای مثبت و یا منفی و تو خودش جمع میکنه یا بزرگتر و شادتر میشه و یهو میشکنه یه روزم از زور درد و بیکسی و غم میشه یه تیک سنگ مکانیزم دفاعی دل در برابر سختی ها سنگ شدنه میدونین چیه؟ بی احساس شدن و دل سنگ شدن یکی از سخت ترین احساس های آدم هست. فکر کنم آخرای کتاب برادران کارامازوف بود اونجا که میگفت جهنم چیست؟ به نظر من رنج ناتوانی از دوست داشتن است آره وقتی دل آدم سنگ میشه دیگه توان دوست داشتنم نداره شاید به خاطر اینه که از دوست داشتناش خیلی ضربه خورده و دلش ترجیح میده یه دیوار بتونی با میله فولادی بکشه دورش تا دیگه صاحبش رفیقشو عزیزش نبا که او نرنجه به تو تبریک میگن که بی خودی توی زرق و برم به دوحان یا گوهام شدی به تو تبریک میگن گم شدن گل گال خونه مردم شدن این سال گذشت. حالا علی کوچیکه دیگه اصلا کوچیک نبود. اون روز پاییزی توی اون کوچه، علی دلشو انداخت توی یک جعبه بتونی و درشو هزار خدا قفله کرد. اونقدر کار کرد و ریسک کرد و دوید و تلاش کرد که شد مدیر عامل یکی از بزرگترین کار خونه های تولید پارچه و مؤسسه چندتا از برنده‌ی معروف لباس. علی زیادی بزرگ شده بود. زیادی قدرتمند شده بود. یه آدم موفق ولی خالی از احساس. البته معروف بود به اینکه ضعیف‌کشی نمیکنه و دستش به خیر میره. مدرسه ساخته بود و چندین تا بچه‌ی یتیم حمایت کرد کارگرا و کارمندش هم عاشقانه دوسش داشته. ولی میدونه سن این آدم هیچ وقت نمیخنده. علی یک بار زاپای عقد و عروسی هم رفته بود. ولی شب عقد زنگ زده بود و ازخاهی کرده بود و همه چی به هم زده بود. آخه دلی که رفته باشه توی جعبه بتونی که نمیتونه کسی رو دوست داشته باشه. با هر کسی هم که رابطه برقرار می کرد بیشتر از چند ماه نمی‌تونست تحمل کنه. شاید علی هم افتاده بود توی جهنم ناتوانی از دوست داشتن. یه وقت فکر نکنین علی کینه زنا رو به دلش گرفته بودا که ای کاش گرفته بود. میتونم بگم که اون هیچ احساس عاطفی به این جنس نداشت. هرچی بود زیر سر همین هورمونای لعنتی بود که اونم بعد از چند وقت تموم می شد و میرفت. یه روزی خبر اومد که هاجمو فوت شده. الان چند سالی بود که علی باهاش ارتباطی نداشت. همون روزی که هاجمو کتکش زد و گفت که یک حرزه ی ناموسه راستیتش نمیدونست مریض شده وقتی رفت مجلس ختمش مرتزا پسر بزرگ هاجمو گفت که چند سال درگیر یه مریضی درتناک بوده مرتزا آروم دم گوش علی گفت بابام تنها ترسش از اون دنیا حلالیت تو بوده انگار چندین بار هاجمو اومده که حلالیت بگیره ولی روش نشده و برگشته علی تو فکر هاجمو بود که یک و چشاش افتاد تو چشه یه آدم آشنا کسی که چندین سال پیش وسط سرمایه پاییز دلشو شکسته بود علی نتونست از صورتشونو بشنسه در اصل علی اون نگاه شناخت اونجا بود که فهمید سال هاست نگاه همه رو با همین نگاه مقایسه میکرده آخه نگاه آدما همون دلاشونه دل مثل حصر انگوشت میمونه. تکه خاصه یکی. ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم ای توبم شکسته از تو کجا گریزم ای نور هر دیده بی تو چگونه بینم چگونه بینم ویگردنم ببسته و از تو کجا گریزم از تو کجا گریزم, گریزم پر پرواز ندارم اما دلی دارم و حسرت دورناها و به هنگامی که مرقان مهاجر در دریاچه ماهتاب پارو میکشند، خوشا رها کردن و رفتن، خواب دیگر، به مردابی دیگر، خوشا مندابی دیگر، به ساحلی دیگر، به دریایی دیگر. خوشا پرکشیدن، خوشا رهایی، خوشا اگر رها زیستند مردنی به رهایی، آه این پرنده در این قفس تنگ نمیخوانند این شش جهت زنورت جون ها است. شش رو روی وی تا از تو کجا گریز کجا گریز دل از تو جان از تو جان از تو یه صورت که نصفش سوخته بود مونس دختر هاجمو برای علی تعریف کرد که یک سال بعد از ازدواجش وقتی شوهرش سفر بوده تو آشپزخونه یهو یه چیزی منفجر میشه و پریام صورتش میسوزه شوهرش هم ولش میکنه و دیگه هم کسی نمیگیرتش علی یهو عصبانی شد سالها بود که عصبانی نشده بود علی معروف بود به اینکه حتی تو موقع عصبانیت هم آروم و سرده با لحنی خشن که خودشم ازش جا خورد گفت مگه نون تافتونی که کسی نگیرتش. مونس خانم درست نیست این طور بگی. مونس جا خورد و خیال کرد واقعا حرف بدی زده. با لحنی شرمسار عذر خواست. علی متوجه شد زمانی که داشته با مونس حرف می‌زده، پریپا شده و رفته. از اون روز همه چیز تغییر کرد. اولیش همون عصبانیتش با مونس بود. بعدش هم پشت چرا قرمز به کسی که هی بوق میزد توپید. بعدش هم به دختر کارگرش لبخند زد. اون حتی یه بچه گربر رو آورد تو خونه و با یه لحن بچگانه لوسش کرد. انگار به دوره دور دلش داشت ترک میخورد چند روز همینطوری گذشت یک روز که بارون تندی میزد ناخداگاه از دفترش زد بیرون انگار دلش میخواست زیر بارون باشه زیر بارون با یه آهنگ بخونه و رانندگی کنه علی سالها بود که این آهنگو نخونده بود با آهنگ شروع کرد به زمزمه کردن دل کچولو دل دیوونه دیگه نرو سونه پشیمون میشی. هر میشی نمیدونی این بونه بیرون از خونه هم سنگ هرچی میبینی رنگ بونه رنگ تو مثل یه بر میبرد اطبال حتی یادت هم میبرند از دل کجورو علی آروم رانندگی می میکرد دلش خواست بره همون محله قدیمی سمت بازار ناخداگاه لبخند میزد و زمزمه میکرد بمیره واسه تو که نکشیدی چه خسته دل تنها چه حرف کشیدی. حالا بگشتی بازم تو سینه میدونی دونی تنها منو داری می دونم شیطون برای جونم منو بازارو بمی زاری اینجای آهنگ که رسید شروع کرد به قهقه زدن از قهقهش گریش گرفت دلش برای خنده های خودش تنگ شده بود دلش برای لذت بردن تنگ شده بود علی سالها بود که لذت نمیبرد یخ نگاه پری توی اون روز سرد پاییزی دلشو شکست و انداخت توی یک قفس بتونی. آخه نگاه ها همون دلهان و باز نگاه پری اون روز تو مجلس خط همون نگاه پری چارده سالی کوچیک و مهربون بود. نگاه ها که دروغ نمی گرد. آخه مستقیم وصلن به دلا علی رفت تو بازار. مغازه اوستاش رو پیدا کرد. اوستا پشت دخل نشسته بود. چنت چرخ دیگه هم اضافه شده بودن و مغازه هم بزرگتر شده بود. انگار مغازه محمد آقا عینکساز هم به دکان اوستا اضافه شده بود. علی رفت تو. چندین سال پیش پسر لاغر و یتیمی بود که احمد آقا خیاط از همین در بیرونش انداخته بود. علی کوچیکه خیلی تغییر کرده بود. ولی اوستا فقط موهاش سفید شده بود و کمرش خم و عینکش علی رفت و به احمد گفت: سلام اوستا احمد آقا سرش را از روزامی جلوش بالا آورد و یه نگاه کرد به اون مرد بلندقَد و خوشلباس جلوش. فکر کرد مشتری، ولی وقتی لبخند و صمیمیت علی رو دید، بلند شد و گفت: "فرمایشتون." علی گفت: که "کیه و اوسته یکی از شاگرداشو گفت که برای علی چایی بریزه." علی کل اون سالها رو برای اوستاش تعریف کرد. حتی در جواب اوستاش که گفت: "منو ببخش." خم شد و دستش رو ماچ کرد. علی گفت اوستا بیست سال پیش یه بچه داهاتی هیچی ندار بودم که شده بود آشق دخترت الان یه مرد یتیم داهاتی هم که تنها فرقش با اون زمان اینه که پول دار شده ولی هنوزم آشق دخترت اون زمان خواستگاری کردم و زدی تو دهنم الانم باز خاستگاری میکنم و امیدوارم نزنی تو دهنم اوستا اشک ریخت و سر علی رو ماچ کرد. میدونین چیه؟ عشق، سوپاپ، اطمینان دل و قصه ها تموم میشن اما دلار نه. زندگی در جام چشم تو سرزت صبح امید از شام چشم تو من رام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویان خانه بردوم شم. دل اصولا از اون موجوداتیه که پتانسیل رخ دادن اتفاقای مختلف براش زیاده مثلا وقتی صاحبشو برنجونه میشکه یا وقتی صاحبش عاشق میشه از زور خوشحالی تالاب تلوب میرقسه یا اون وقته که میترسه یا مثلا موقع هیجان یا حتی درد دل در تمام این زمانها از خودش یه واکنش جدید نشون میده یه واکنش که شاید با قبلیاش از زمین تا آسمون فرق داشته باشن اصلا کسی هم نمیدونه اینا رو از کجا یاد گرفته شاید از خدا، حتما از خدا در اصل باید بگم که دل هیچ وقت هیچ وقت صاحبش رو تنها نمیذاره دل همیشه ها همراه صاحبش باقی میمونه و بار تمام احساسات منفی و مثبت صاحبش رو به دوش میکشه دل موجود عجیبیه، عجیب و مهربون شاید بهتر اینجوری بگم دل هر کسی حتی اگر با بقیه دلا و آدم مهربون نباشه همیشه ها یار و یاور و دوست صاحب خودشه اینجا رادیو هجده بنفش بود و شما به اپیزود 11 هم از فصل دوم اون گوش دادین. اپیزودی که تقدیم شد به دلهای عزیز. اینجا رادیو هجده بنفش بود. دخترکی که دلش بنفشه و دل کسیو نمیشکونه. و یا بهتره بگم سعی خودشو میکنه که دل هیچکیو نشکونه. ما رو در کانال تلگراممون با نام رادیو هجده بنفش با هجده عددی و بخش پادکست های تارنمای بیپتونز دنبال کنید. می رخست زندگی در چشم تو سر زدن دلم دارم از تو نمی تو همچون چشم تو خاموش همچون سرگیز وی خانه